اینجا به این حرفا باید عرض کردم و اونها تراجو گرما و اونا عرض عرض کردن برای اینکه سر محضب دستگی ها دوباره گفتم که از اونجا رو لطف کنم بخونم بعد میگه که بخنمون به نافاک را و آباندر آمویشتن پاک را البته در حقیقت اینا رو به کار کشتی و این علم و خودشون داشتن هر از گل آمد رو بشناختن سبک خشت را کابت ساختن خ من یاده که یه مفتاقات اینجا های اطراف تعرییم که می ساختن کنه های کیتای به کیت های رزیین توش پر خاات گلم می کردن میذاشتن رو هم که این دیوار زود بیاد بالا این فایده نداشت برای اینکه این خشت و تا مغزش خوش بشه که میچینن این خوش کاملا کامدم یا افت نمیکنه. ولی وقتی که تو پیت بنزین بزنه اولا که بارو میزنه اون زنگ میذا می تو پرز. این مغزشش رو خوش نمیشین که هر نتیجه اینجا این کار دیوار نمیکنه. این اینکه این, این خشته بذان تمام نازک اون اندازه توی آفتاب و باید بچینند هم. البته که اخوشون میرسید دو برابر کلوفترم درست کنند چار برابر کلوفترم درست کنند ولی نباید میکردن چون, بر... چون هر آنچه از گلامت رو بشناهدن سبک خش را کالبت ساختند کالبت کلمه یونانی است اصلش و در فارسی شده بالب که در حقیقت قالبم هست واله خوب در فارسی قالب میگن و سعدی هم با اون یکی قالب رو با غین رو با هم قافیه کرده چهار طبع مخالف سرکش تند روزی چون با هم خش چون یکی چهار شد جان شیرین برائت از قالب ولی این قالب وا که شبیه اسم فاعل عربی است و فکوت می کنه آدم که از مصدر قلب اومده باشه هیچ ارتباطی با اون نداره همین قالب به سنگ و جچ دی کرد ارز کردم، کردن رانی ساختن و ارز کردم که معنی های مختلف داره تله کردن، به خش از برش هندسی کار کردن هندسه معرب کلمه اندازه است اندازه رفته به عربی شده هندسه ولی اینکه ه و علف به هم بدل میشه مثل هسته و هسته همیان و امیان هسته پیل استه پیل هسته پیل استه یعنی آج هسته هم هسته, هسته. بنابراین اصخون همون هسته هست و بو که اصخونه توی گوشت رو بهش نمیگن هسته ولی هسته می به بهش میگن اصخون سعدی میگه گل آقار سعدی سوی مون دان به شوقی و فلفل به هندوستان چو خرما به شیرینی اندوده پوست چو بازش کنی استخانی هست. استخوان هست استخان یکی و ارز کنم که به سنگ و به گچ دیوار کرد به خش از پرش هندسی کرد هندسی اندازه از مهندس رو در عربی از همین اندازه گرفتن به همین هم بعضی جماعت دوبله فارسی اسم فارسی واسه مهندس درست کردن هندازمند هندازمند یعنی <laughs> <يعني> مهندس برچونکه ما بلپارین از برای مهندس کنچی که شعر حافظ اومد حافظ هندازمند پایده ناده بید. گفت که مطای کفردین دیموشتری نیست گروه این گروه آن پسنده نه ارحام به خش تصبرش هندسی کار کرد هندسی اصلا یعنی از روی و مهندس یعنی کسی که اندازه کارها رو بلکید گره زده بگو شاب از تفریات مکان که فکر هیچ مهندس به خشن از برش هندسی کار کرد چون گرم آقه و بلند گرم آقه جوز اولش گرمه درستی ولی محتدی سر جوز دو همه. آبه یعنی گنبد آبه یعنی گنبد و میدونید که سخ و همه ها دلیلش گرم بوده به این دلیل میگم گرم بوده اما چرا من اینه میگم دلیلش اینه که کلل آوه و آوه به معنی گمبت ساوه بارسی امزوش میشه ست گمبتان ست گمبت ساوه آوج راه همه دون بوده آوه آوه و آوج کلمه سرداب که در یزد یعنی زیر زمین این مطال میده این آب نداره توش که من اینکه آب اگه توش جوزی نمیدشتی توش، پرشون درد میگیره. اصلا نمید زیر زمین توش آب داشتی سرداخت اون جوزه دوبونه شون آب نیست هیچ صحبت نداره چون سرد پینار در یزم اینجا چوب نیست و مسائل یعنی ساختمونای هر ناحیه‌ای. با توجه مساله ساخترانی خود اون ناهیه بزید. اگه سنگ زیاد بشه ستنگ اگه آجر زیاد بشه آجر اگه چوب زیاد بشه مثل امریکا که از همه چیز چوب بیشتره تمام کنه ها چوبیه و در نواحی کرمان و یزد و ها که چوب نیست آب نیست درمان که چوب نیست سخبار و ضربی و فهم بهم ارگه فهم که دو هزار سال از نوزکار عشقانی باقی مونده خش به خامت با گل رست ضربی زدن یعنی گچه همیز، حالا آجوره ها این ضربی وصل دیراه هم میزنن گچه میزنن، خیلی زود خوش میشه چه هست می ولی اونجا گل رس بوده و خش این عرق رو ساخته محاسبه میکردم به طوری که خود تشار وزم این این داره و تمام شرش هم روی دو تا پایه به مهندسنن بلی هم میگه این داره داخل معبولات میشه ولی همین محاسبه قضیه این است که اون فشار اون گمبد رو پایه‌هایی که ترکیم کردن باید بتونه تنبول کنه تا این پایه‌های یه وقت از تو کلاف می‌کردم یک کلاک‌هایی دارن که بابا از آبه‌ی قنبری باید رو گرد می‌گه حتما نبوست کنم که گرماخه یعنی جای گمبدی شکل گرم به ا آب و آوه، معنی دیگرش گمبری و میره از این, این که در بسیاری جه اصلا گرماوه هست در های قدیمی احتمالا شاید در دوستان فعدی احتمالا حالا من ذهنم یادی نمی که بگم اون شنیدم که روزی سهرگاهی، وقتی سهرگاهی، گرماوه آمد در اون خایز. اگر آب باشه که دیگه آبه نمیشه کمتر میشه به هر حال گرمابه یعنی جای جای چه؟ و گرم چون گرماوه و کاخ بلند تو ایبان که باشد پناهاته کلمه دیگری که باز معنی کنم ایبان عیبان معنی کاخ یه معنی دیگره یه معنی دیگره عیبان بگیر از این جای نوسط، دفعه، جلو، باز حالا دیگه دیگرش و... که حالا معنی دیگرش خاخه و مهل ایوان مداریم که قول شما دیگه کاملا مشخصه یه شعری از ساقنه مای یکی این کجا شیدان گرد لشگرکش، بفت خنجرکشش، کجا رای پیرام لشگرکشش این گره بعد دیگه نه تنها شد ایوان و ایمان و کاخش به باد که کس ایمان به معنی کاخه و پناه از گذن کاملا نشون میده داری که اونجای جلوباز فقط برای تفرج و برای هواخوری خوبه برای پناه از گذن جمع نکنم کاری صورت. زخارا گوهر دوست یک روزه دار خارر در حکی به معنی مطلق سنگ به کار برده، حال اینکه می‌دونیم که, می که خارر نوعی سنگه، نوع سنگ خروجی است، سنگ آتش فشانی نیست. با مخلوط سنگ‌های خالص آتش فشانی 6 تا هستند. دیگه من از زمین‌شناسی سال 3 متوسطه که در سال 1115 خونده باشم دیگه وقت منم یادم باشه ششت سنگ خروجی بود تواتس بود و آمفی بول بود و میپا بود و فیلسپات بود و پیروسن بود و پریدو بود اینا سنگ های بسیش آتش بشه بشه بشه بعد مخلوط دو سه تا از اینا با هم خارا رو درست میکرد که به فرنگی بشه میگهن گرانیت سنگ خیلی زیباییست سنگ خیلی سختی هم همین دلیل هم دل مشروح رو بشهد به خارا سخارا گوهر جزده این گوهر هم اینجا به معنی فلسطی است جواهر نیست دلیلش این است که پشت سیموزر هم جز گوهر میاره سیموزر جز گوهر نیست مگر بگیریم اصطلاح فلسفی، و گوهر در اصطلاح فلسطی مثل که یه بارم ارز کردم یه ذره حاسم نیست یه دور نیم گوهر یا گوهر که معربش جوهر رو در عربیتان برن عبارت هست چیزی که موجودش متکیر به خودش باشه سنگ مثلا گوهر، این خوزیه بنده این گوهره ساعت گوهره ولی هوش گوهر نیست ولی که هممون می‌دونیم چیزی به ناموونوش وجود داره همون نمیتونیم مشون بدیم یکیسی بگیم که ای این موش میگیم پولا نکست باهون شید موش داریم ولی تمام رنگ ها بدونی استثناء سفید شما سفیده بدونه قیده یک چیزی گمکر کس نشون بدیم سفید یا این لیوانه یا این کاغذه یا برده یک چیزی هست سفیدی روش سواه او رو اونی که جمعه فرقی داره که در دستور رو بهش میگن سطفت یا اسم معنی در دستور جوهر رو گوهر رو میگن اسف البته اینو از دو نظر برشون بحث میشه ها قاطی نکنی با هم در دستور اسم ذات و از جهت عمل دستلیی که روش انجام میگیره در زبان بحث میکنن در فلسفه این اسم ذات و جوهر رو از ذره تفکر در ذاتش بحثیم کنید و عرض یا اسم معنی است یا صفت صفت و اسم معنی هر دو در فلسفه میشه از مقابل عرض بنابراین دیل میگه که ذخارا و افسون قرون آورید اینجا من نمیدونم دیگه نمیتونم بگم که این افسون مرادش همون اون احسون است یا اینکه که مقصودش علمه اون هم به دفعه ما اون احسونه دیگه هرکه توی اون ما بچه بود این فیلم علی بابا هم چه این روزی که نشون میدهدن بابا رئیس دوزه هم نادید هرکی میزد دره خود خود ما اما اون روز فکر کردیم که این حیاثن جادور کنه ولی حالا از یکی یک از یک این یک یک یک دستگاه جادو رو همه هم منرکسی باراش نفتی یکی از نام داره، از دو دستور میده ده خودش در باه خود این است که اون افسون اینجا میگه که زخارا، برادش سنگ سکه خاص و اراده عام بینید یکی خارا و مطلق سنگ زخارا و افسون، برون آخری شداراسته ها را کلیم. ها قبل از این من مکنم به دست آمادش چند کنه با هر چو یاغوت و بیجاده و سی مزرد یاغوت و, و هر کی این ماده اکسید آلومینیوم متوالده آل و خاک روز و خاک چینی که فاولاً بشیگن این امور فشه، این میشه شد. این تحت تحصیل فشار شدید و حرارت شدید و جریان الکتریکی شدید بود بلور در میاد این بلور اگر که هیچ اکسید فلز دیگر ای نباشه سفید یا بود سفید اگر اکسید فلزاد دیگه درش باشه، رنگ میشه. اگر اکسید آهن توش باشه، برمز میشید. اگر اکسید مس باشه توش سبز یا کبر میشید. و انگاه اصلا به رنگاه دیگه، یاغوده. یاغود خودش برمزه، برمزه، سیره، لعله. هم قیمتش کمی از یاغود کمتره، هم رنگش حریبتر از رنگی ها. بیجاده یاغوت زرد است کنید و که البته هیچ کدوم این ها از, از قیمت به خود یاغوت هستی نیرسه حتی زرده چون یاغوت رو بیجاده بود که شراب زرد رو صحبا و صحبا اسم شراب زرد صحبا رو بیجاده نشکلید و سوی آقود رو بیجاده با سیم و ذر اسم این که بعدها سالیان سال سی و ذر هر دو من بوده هم سیم هم زر. سعدی میگه که شنیدم که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست افدار سیم سیم یعنی من پندارکین قول معقول نیست چون کامه شدی سنگ و سیمت یک نیست گدا کند یک درم سیم، یعنی بود گدا یک درم سیم، سیر فریدونز ملک عجم نیمسیر به خفتن چپ روستایی جفت به ظلم که سلطان در ایوان این مرد ذرم همیتون این که حافظ میگه به ذرت کنن، به ذرت کشند هز. زرد کنم زیبر زرد کنم کشم در بر زرد کنم زیبر زرد کشم در بر من نبی نواری مزرد چه کنم که زر ندارم یعنی پور ندارم و نظیرش همین تو تنگ در ویش مگیر در نوارد سیم و زرش در قامت سیم شمار اشک و روخش را زرگ حالا قادر ارز کنم که سیم و زر هم به من یه پوله هم به من یک پلزه بعد هم اگر پول اسمش هم میخواستم ببرم درهم و دینار بوده دیر درهم یک مسخال سیمه و دینار یک مسخال زره ولی مسخال هم باز تفاوت میکرده مهیارش مسخالی که پیش از هم معروفه در چهار و شست و پنگ صدوم گرم. یعنی از پنگ گرم درهم و دینار. درهم و دینار هم هر دوش اسم یونانیه. الان هنوز هم یونان باید اوش درخت کنه. با و اما کلمه پول هم کلمه یونانیست. بهش میگم در یونانی بهش میگم اوبولیست. O-P-O-L-I-S. اوبولیست. اولین جایی که این آمده در سفرنامه ناصر خود. اگر اشتباه کنم در شهر اخلاط واقعی در آسیای صغیر ترکیه امروز. ناصر خسوه همچی که نیزاره بگیرمتم شهر اخلاط چنین و چنان است و داد و مردمان به پول است بعد از اونجا پول کم کم آمده و در ایران در ایران چیز فرض کنم که واحدای خیلی با عرضش رو بر اثر رقابت‌های کشنا ببینید، چه از جامعه‌شناسی در این پارو تصدیر دارید. دینار یه مثخال طلاع است. عراق، پولش دینار، دینار عراقی یه پاند بود، گاهی از یه پاند هم دیار کرد. حالش اینکه می‌ترد فنجاست دینار پول گنده‌ای بود در ما در رو برای کوچک کردن رو از رقابت ایرون اون رو گشته بودیم هزار دینار همین یه مثال نوبر یه بودیم. بودیم هزار دینار. یا مثلا شاهی رو که تازه حالا خودش پنجاه دینار میشه شاهی دینار تازه تخصیمش کردیم به پول یه پول یعنی مثق یه شاهی صدوقت میگفت جان البته مان پولنایزا علی یوا ده نمیاد از احمد عطاری داشتیم یه واجی بود معروف بود که خازم همون کلا بیام اول سفانه میلان خاصش ولی می که پسری داشت مرتضا که همسن ما بود جایی که کلابوس بروش فروش برو پول پساریش یه یخو سبزی می‌گرفت یک شاهی میداد که این یخ یه نفر بود البته که نفر خودش می‌کرد ولی به حال یه اشاره می‌داد هنوز روی اون حساب فول قدیم که دیگه نبو وجود نداش یه شریف دوتا دوتا جنس میخرید یخ و سبزی با هم میگهدش فول حساب بوشید و هر حال کلمه اون وقت اون طرف هم هر عثمانی لغمی که با آدم های خیلی سردستی بدن پاشا, پاشا یعنی پادشاه پاشا چیز تحقیقی آفته پادشاه برای که پادشاه جوانی رئیس شاهانه در ایران بلی اینو این رو بکنن اسم آدم های فهمونی باشه من به با همین تحقیل لغب خانی رو که گفتم لغب لغب مروع اصای مغل چنگیز خان خلافو خان داریم ولی تیمور خان نداریم تیمور اگرچه از چنگیز اصلا کچکتر نبود ولی چون از نسل خانهای مغل نبود اسمش اندیسه خان، لغب رئیس قبولیه بود و خانم هم معنیس شد. یعنی زن رئیس قبولیه بود. در دوره قاجان لغب خانی می‌دادم. کمتا شعرات روش اسمانی، شاعر خیلی خوبیه، خیلی خیلی شاعر خوبیه. یه لغب خانی گرفته از دانسته می‌شوند. فرمان صادر کرده که ایشون نیزماندگی خان هست. نیزماندگی خان هست بودی شد اسمانی. برماغ. این هم بود. دارو از این حد ها زخاراب و حسون برون آوری چطور آخته بعد ها رو چینه بعد میاد سر اتیگیا خوب باهنه خوب قافل و چون چو مشکنا چو اون دو، چو انبر، چو این دو تا انبار چطور چند لا این اجزایی که اسم بره بعضیش نواتیه بعضیش این بود یعنی اتیجات رو کلا بوت میدونی بهتر از من چیزی چیزها رو یه سری تر آده‌های شمی‌هایی هست که اینا می‌گن امین‌ها امین‌ها مواد ازوت هست یعنی ازوت هست که کربان و اوکین‌های می‌تونن و یه شاخه اینا رو بهشون می‌گن امین‌های آروماتیک، یعنی امین‌های خوش می‌گونن اینا هزاران ازش می‌تونن الان در لاغ بسازن به این تمام اطراع میوجات بدون استثنان تقریب این خالدرهایی که آب آق چیز که یه از اون عیدای امین محسوسیش در از بوی شاخاش نید از اون چه از اون شاخن چه از اون اون چه, شاخن شاخن چه و هزاران روی دیگری که در طریعت و نداره کردن ولی قدیم که این نبوده اجریگات رو از مواد خوشبو میگیرند فقط این مواد یا حیوانی بودند یا نبود انسان الحمدلله ازش نداشتی نبود یا یا به صورت عرق بوده یا به صورت دود بوده یا به صورت خودمون ماده خود ماده نیست که بول سرخون برو هنوزم هنوز که هنوزه یکی ها خیلی خوش بود که فرنگی ها دارن نمو لباند لباند ریز خیلی داره بسیار خوش بس های پوچوبو. یکی رو می لبان رو می در نخ می بندن می شما بذارید یه چیز لباس گوی خوشم یعنی خود اون گل رو می گرفتن رسی کنید عرق گل می ریختن اون تبکیل می کردن چون همچین گل نیست گل نیست، گل همچین نیست عرق کشی می کردن و انباع عرق های مختلف از گل پشتون می گرفتن که عرق گل صورتش همین گل وانی گل صورت درش مونده گلاب گلاب که از یاس بگیرد نمیدون گلاب بولا... گلاب یعنی عرق گلستگی گل بول به معنی اصلی شده باقی بایی یه مش عرق ها هست خوراکیست عرق کاسمی، عرق نارنج، عرق باهار نارنج، عرق اوتروج در شیراز دوشونهایی دارن که آفندی به خودشون پالوزی دارن رو برسمی دارند علاوه بر این و عربی یاد عربیات که می‌دهد شما می‌خواهد عرب کاسمی هستش، عرب نستران هستش می‌دونن عرب رو با چه هستن تا این‌ها شربت دشونده‌ی شکر دارن می‌گیزن نجا هم می‌گذنن، عرب هم می‌گذنن هم می‌گذنن، نجا هم می‌گذنن بسیار چیز ندفوری هم نست که اون مخابش‌ها رو می‌گذن عربیات به بردن یکی هم این مواده، هم که مثلا چوب عود رو بکنه. شغل نزن. و این بوی خوش کنش میگه مثال سعدی اون با تا نسوزانیش خلایق از نفسش دن بدن <تصفيق> <تصفيق> همچون درخت بابیه سعدی به فرق شب سوزان و میزه سخنش همچنان ترست آری خوش است وقت حریفان که او. اون و سوز غافل که در جامعه مجمعت آتشدان روی که مخصوص همین دود کردن نواد محتب یک چیزی مثل آتشگردان روی که سرم داشته و دفتری داشته نیگرفتن و. شبکه یه غنگی بوده یه کنم که این بود رو چوب بسیار سوس. و الان هم که گاهی میارم از هند و میارم یه فاریک هست برای اینکه زود نسود زبطه این نره دو روشی نظاری مواد رو دیگه میکردن که این به آرامی روز بزنید و در قدیم هم براده اود رو یعنی اود رو مثل خاک عربیز میکردن و همراه شکر میدیختن در آتش از بوی غند سخته هم خوش شنید از خودم بوی کرمل خوش شنید و این شعر آفز رو تا این رو ندونید چون نمیتونید معلی کنید اون غزل بیاتا گل برفشانی مبمهی در ساخرم دازید برای جا سختش کافیم و ترهیم و اگر قملش گرنگی زد که خونه آشقان ریزد منو و به هم تازیم و بنیادش براندازیم به هم یعنی با هم منو و به هم تازیم و بنیادش براندازیم برای ندارم مطلب چون بعضی نسخان به هم تازیم بعد یا ایک دشتی از دوچه خانلری پرسیده بود که آه هی کشی بردیشون به هم تازیم کنس غزمی و ان لریم دارم آبزیش تهسیم کرد، قدیم به هم تازیم کرد. داشتیم گفتم خب به هم یعنی چی؟ یعنی می تازیم به هم. پس خان میگه خب به هم تازیم یعنی چی؟ یعنی با هم میسازیم. میگه خب چطور به هم, یعنی هم, به هم, تازیم. هم تازیم؟ یعنی با هم میسازیم. ولی به هم تازیم؟ میگه نه با هم می تازیم. با هم چطور تازیم؟ یکی اینه که این درست. بعد میگه که شراب و ارغوانی را گلاب در این که میشه که مواد مهمتر گلاب یا عرقهای دیگر در شراب درچ میکردن برای که توی شراف به نظر برسی، و گاهی بسیار قوی تر رو که موجب به کردن یا کردن شده میشده اگر مشک در شراب میاندهتن این یک خود به یعنی صبحش یاد بسیار همکه حالی باید باید حالا ولی با میگه شراب عرقبانی را گلاوان در قدع عریضی نصیم را زود دود میاد بیرون نصیم باید این سیدو مرد بردی که حراکنده کنه تا خوی خوشش پس ایترگردان نسیمه نسیم ایترگردان را شکر در مجمر اندازی. شکر ریزن تو آتیشه اینچه خوشبختانه در فرهنگی بیاس و لغات نوشته که شکر را همراه برادهی بود میکردن و میلیفتن در پشتان من برای چند دوام را این زیاد کنه ولی یعنی هر حال مشکم از تحصیده ها هست نکاخ رو شبک در قدر سیاهی مشک در اون شراح شراح شراح و, شراح و سهرگاهان دیدند در این از تصاید حافظ حالا رو کار ما اتوار. بنابراین اود و صندل رو شاید گیاه های خوش دوید دیگری هم دیگر کرده با هم ظاهرن یعنی توید باش یا چیزی دیگه از همون نقه و حراب کافور شیره یک درختی است که در اندونیزی اونجا ها دیگر, دیگر, دیگر و داستان های دلپتیر هست از جزیره هایی که درش کاخوز بود و درست ناسه برداشت کاخوز چون زخم میزدن درفت رو و زد بکیم میزشتن و این شیره ای اون کنی آماده و یه قصه ای من خوندم برابه اینکه یه جزیره بود و اون جزیره همش درفت کاخوز بود و زیر نظر شاه بوده بود ارز کنند که همه هم چون میرونستم این منشاه هایی مگهبانم نمیزشتن برای این کسی بره. این و که برعت نیکرد وقت جمع و دیدو می‌رستم جمع کردن می و می‌عودن طرق خزانو و باید بارد کردن و می‌دادن و مزد می‌دادن و یه بابای یه ای ایاری میره. این کافروت قبلان جمع می‌کنه می‌ره و از کنگ و وقت شام در میره باید باید که دسته نمی‌کنه چو بان و چو کافو و چون مشک ناق مشک مشک حال ناق آهوی خوتنگ نقی آهوی از در خوتنگ که ناقش سال بسازید پوست درست همون جای نافش پوست ارسال. اون پوست درست میگن با هی نسبت یعنی مربوط به نام مال ناف. این پوست درش یه ماده سرخ رنگی جمع میشد و همین دلیلن روزن خونه بسرادم خونه ترکیشی داره با خون با خود پرد باشه رنگش صورتی با همین که کم کم به سیاهی میرمی و درست مثل زخمی که روش کم کم می‌بنده و پوست روی زخم سخت میشه تا وقتی که الاخره این پوست میفته وقتی پوست نو از گیرش روید و کاملا بیخط از این پوست روید میفته این نافه هم بعضی کنه مشک خو این به هم می‌پیچه و صفت میشه و به آدم ترش رو, رو معشوب و <تصفح> <تصفح> رو تشکیم می‌کنن به نافه‌ای مشک البته و ترشی رو بند اگر تو روی به هم درکشیی تو نافه‌ای مشک هم احمد آف که خوشت نهان ما نهان نهید بقی ارز کنم که این نافه خوش می‌شد و یه چیز برچل و چوب شده‌ای و از ناف آبودی افتاد و می‌رفتن یه می‌عوردن، ولی مشارله جماعت از بس که عربشون خوب کار می‌کرده، نسل این آهو رو برای امداخت یه آهو رو تو سال یه نافو می‌کنست بده، شکار می‌کردن، برای اینکه نافش رسیده، نرسیده، و هم یک مداری مشک ناهو بود، این بودن، بعد این آهو ال الهالعود دیگه نداشت. و هیچ وقت به نرسید که پارکی چیزی پاکی حفاظتی برای درست کنم و حساب دارم از این کنم و خیلی ها این کار اعتراض دسته ناخذ میگه مکشان آقوی مشکین مرا ای سیاد شرم از آن چشم سی احلاحش رو بزنان بلند و, و که این معروفه که ناف آهوی خود این نشت و بعد می آوردن چون بسیار بسیار متای گرامبه بوده از تلاو نام گرامبه ها تر بوده یه فصل مفصلی در تقه اسلام در واقع آداب خدید و گروش این نافر و اولا نافر نافر باید بشکافن تا پوش مشخص بشه که این نافر مرغوبه یا ناهر بعد وقتی شکافتن ملفنی درش بازی بعد شرایط اینکه فعر اسمش به عربی و همزه و مثل فار فعر با میبیسن این نام یعنی گوشادن و بازه نرزن فتق فعر, فعر عربی رو شرایط اسلام که و این با که اگر نه، نشکافته به دلیل اینکه کالای خیلی دیامه های بوده و مرافض هم زیاد چیزی که فکر خوب قاطعه مش بیشده، شدیه مش این مدرسه جیگر سوخته بوده این که حافظ میگه اگر خون دلم بوی مش میاید عجب مدار که هم در راهوی خود نه. ی خودی نمیگه یا قعانی میگه که از جوهری که خون جیگر خورده است قیمت می پرس لعله و رخشان را جگر جیگر فروش چه می قدر از قض را با آی و فا اشاره به این که مشک داخل جیگر سلطان داخل, داخل مشک می کردند و به قیمت مشک می کردند خیلی زیاره مردم در تغلب از اول سوابه زیاد بود، بجورد داشتید. یه روزی به خاطر دارم که یه تو رادیو هم گفتم. معلوم دکتر راجی وزیر به احراری بود، من در مجلس سنای نطقی کرد، من وقت دانشی ها بودم، یه مجلس کاره می‌کرد. یه نطقی کرد، آجم انبال تقلب که تا الهو کشم چه می‌کردن، چه می‌کردن، مرگ، آسان آب می‌دادن، نحکش می و می از این زیاد می‌شونی بکشن و مثلا جور مختلف رو از جمله این که برای تغلب در زعفران گوش روم گاف رو می‌گیردن، و, می و این شدیش می‌کنند و خیلی نازل. و بعد در آب زعفران کیس می‌کنند خوشت که شد موقع سابیدن، این همون زرطرون سابیدن شکلش همچه شکل که تارای زرطرونه و خب یه از که خاطر زرطرون خدا بریشت به به که گفت اینو یه وقتی من داشتم خاغانی رو می‌خوندم. خاغانی بوده سال سیستت مرده بنابراین هرچی شعر گفته من قبل از سالش با... اگر چنین تقلبی بوده همون سرکی بده نشوده که معلوم نیست از چقدر خوش از خوانی بوده که این مسئل شده و گوشی اعرامده ساخته که هر جا که نوگلیز خسلی هم حریفه بود آریز گوشت گاب بود با عارضه هر کنم من ارز کنم که این است که انواع افتان تقلبه در جاهای که سر کرده می و با... بینید چه از سوستن، بار گوشتگاه گوشتم گوزه افرون تو هر حال داشتیم این ها رو میگفتون چای باید مشک و نافع، یکی از مسائلی که باید بگم این است که معروف است که مشک بقدر میگوشت نافع است و که امکان پنهان کردن شد. اگر کسی که یک کنه مشک داشته باشه، با اون مسائل اون گوشتگار سعدی اینکه که خوبی سعدی است نفسی هست. چه کنند گرد نکنه مشک دارد نتواند که کنت یکی دوم این که در کشف الاسرار و عدت ابرار هفتهی که مذاق خورفا نوشتی اونجا این مثال روانده خونده که نوشته بود که وقتی که بازرگانان مشک کان کالاشو رو هم بکنن این تقدر یک ای روش چدیده و نافذ که دوزدان از پرسنگتا راه به بوی این ناف میان و کارون میزن یه که از طلاب مراسد گرامبادره و ثبوت هست با من حافظ شش سایست این که به بونگ نافذی تا پر سوافظان تو رو بکشاید این بود این میل و آرزو و هوای نافی که ولی در اینها نید برونگ نافی هم که برونگ نافی تا چه خون در دل خون در دل آهو خون و, و همه رو کنم گفته بود در کشف الاسرار که برای اینکه بتونن اونا ببرن یه سمگیست یه شویه ایدیا هیست اون گلاده متعبن به نام انگوزه جوزه اولش هم گواهی میده یه یه چیزی بود صافی از یه بود آقای صابران اول شاباد و اسم پیچید چی مثال هم یادم خواهد الان مثلا و این جوز شوخی که میکرد مثلا یکی کسی آرش پرس بگیرد و اون کن، کن، یه انقوضه به قدری که اصلا قابل گفتن نیست تنها موردی که میشه بهاش یه خورده مثال زد یه یه از اون گنده اینه بودوی چای مسترس تازه خالی کرده باشه این یه ذره نشون از اون گو داره یه چیز فحشم بعد این اسم عددیه این مادنه هم که سمقه و خیلی هم برای خوبه اسمش انگودان یا انجودان هر تشمان میشه کنم که میگه که تو کشف الاسرار میگه که بازرگانان مشت بارهای انگوزه بار میکنن بارهای انجدان و نافه های مشت رو در اون پنهان میکنن و بوی بعد این انگوزه بوی مشت رو بختی میکنه و این از شر در امان میدهن بود را بود را را از دوی هر بوده می بود بود را چیز نبوده یعنی مقدر خری قول امتشار نبوده و هر حال این چیزی که نوشته بعدم میگه که اشتالی نداره که مثلا کسی گوهر پاک داره و ناجنس و ناهلا میشمهیمی نداره بعد میگه که این مشت بوی انجدهان میگیره ولی مهم دو روز که پرنش کنن هوا بخوره اون بوی اموزه مرتفل میشه و مش بویر خودش رو به هر حال اینم نکته‌ای بود که من گفتم که همدونقل مشت و جلو گیری کردن هر شده چون اینا رو نمیاد جایی اینا کتابی که نوشته نشد باید از من بخونه و یادش بمونه بگه اون مسئله بردی که مشت ایناست و یکت تو بانو، تو کافو رو، تو مشکناب، تو اودو، تو انبر اودو هم که عرض کردن. انبر باز مثل مشک، اطره هیوانیست. اوده های چربی خاکستری است در دریای چین، در سواهل اویانوس آرام، به صورت بسته هایی، به صورت توده هایی از نیم کیلو تا پنیشیش کیلو. میاد روی آب عدیه که انبرن و اینا رو از در این محصول است که این هیلوان رو تنسلش c a c h a l -O -T. احتمالا اسم این باشه. و در فارسی بسیار قشنگ ترجمه کردن امبرنه امبر نهنگ این کشالو حیوانیست از خانواده نهنگ یعنی از خانواده باله استانداره بچه می زاد بلن نهنگ به اون داشتون در نفس می ولی کشالو از یعنی در نفس در نفس می رسه یعنی قدری پوشت ولی به مراتب در رنده تر برای که بلن به دلیل تنگی جلوش فقط ماهیای ریز میتونه بگیره و مقدار زدی آب بيكون تو دهنش پنج تا به داخل ریز, ریز, ریز, ریز پنجره از تو این پنجره آوار میده بیرون یه مش میگو و یه مش ماهی ریز اینا که من یه دفعه یه عکس از اون که در روزی از تو میاد در حقیقت اون باعثی باز بگو مثلا، بیس کیلو میبود روش همش، تقمهش، اینجایی سبیه کنید در حالی که که هیمان و هیمان بسیار درونده ایست سرش شبیه مرخوط نافذه و بسیار بزرگه یعنی یک سربان تنشی دو و دهن بزرگی داره که باز میشه و حمله میکنه به هیمانات دیگه و می‌گیره و میخوره، هیمانات بونده. می‌گوگم که این اولا می‌گوی این حکومات بزرگ هیچه اطلاعاتی در کتاب‌های خانه بشنسینا نیست. دقیقش همینه که نبتون این رو زیر نظر می‌گیرم. بحثیه ندارم این‌های نبتون ایر زیر نظر می‌گیرم، مدخل ندارم. من پاریسی که بودم، مثلا 5 سال پیش، شیست سال پیش یه رپورتاش دیدم در تلویزیون که گفته بود که برای اولین بار در تاریخ دانشمندان موفق شدن یه یک بالینی رو یه نهنگی رو که بچه می موقع آتوشمان یعنی موقع زایمان فیلم بگیرم بگیرم و فیلم گرفته بودن و اون فیلم رو پرش میکرد درمان یه ای که فازه دست این اینه که این چند سال عموی کنه چی میخوره مرزاش چیه نمیزن برد وقتی شینا رو نداره خبر ندارن مفتن که منم متاسفانه دسترس ندارم و الا اگر اینجا، اینجا بردی در ده خود شهر دانشه و اگر کسان میگویدن شاید تحقیق میکردم الان شاید انشاءالله همتی بکنم کار بکنم باید ببینم که آخرین کتاب ها در برای کهشاله بخونی چی نوشته در ارهاد میگویند، بعضی ها میگویند که این مسانه این مریض میشه و این توده چربی در مسانه اون جهن میشه و بعد باز دور و, و زحمت از مسانش بیرون میده این که به هم گفتم که این کاشالو مبارزه های پولانی داره با ماهی مرکب ماهی مرکب نقی از هشت و این مرکب چین پاکم نمیشه اگر کسیدن جلی پاک نمیشه و ما با بودیم برای رست کشتن از این مرکب سپاره میکردیم این مرکب سلاحه یعنی وسیله استدار اون ما دشمنی که بهش همده میکنه زیادی از این مرکب خواهش تو دریا پشت میخوره و این مرکب اون ماهی اون چیزه بسته اون مرکب هست که تفکیر میشه به همگرد در مدعوضه هم هم. اما من این چجایی که خوندم و با علم امروز هیچ اطلاعی ندارم که تا چهرد اینا درسته یا نه اگر شما وسیله ای دارید که بتونید برسید و ببینید خیلی خیلی هم خوشحال میشم اطلاعاتی خیلی از این اطلاعات ضد اطلاعات که در تکمیل این اطلاعات اگر به دست دو بودنی تو من هم بزینم که اطفاقا کار من این کاری متاسخان عدب حریبش این است که الادب و هوه اخز ظلم کل شهرین به طرف این که جاهز کرده هزار سال پیش سابقی ادب عبارت هست از گرفتن از هر چیزی اندکی یه طرح فقر باید بزنیم یه بزنی. طریق بزنی. نتونم عربی باید بزنی میده زدفن پرنگی باید بزنی میده زدفن پرنگی باید بزنی میده زدفن زنی شنسی باید بزنی هیچ کدومی ها رو نهدیم اینمال انبر چو اود و چو انبر چو روشنگلا یکی رو که است نورده زباد هیوونیست از خانواده گربه از دیره گربه سانان. اوله به قوله علمایه که در هند و آسیا و هر حال محلش هست جانور وحشی است گربه زبادم معروفه اصلا یه صداوردار کامل با اینجا احتیاج تو خواهران از خواهران یه چیزی. این جلسان بیگه صداوردار احتیاج گربه زباد همه تمام حیمونات موقع جهجوی و موقع فهر شدن، موقعی که بختی جهجوی چون به یه صوبتی به خصوص نرها این تمایل و اصحار میکنم بول بول نر میخونم گروس میخونم، ما <تصفح> عرض کنم قهربابل نر میخونم حتی پروانه ها این ها مثلا رقص دارم بعد گروه از خودشون متساعد می کنند که مادر رو می گربه زباد هم موقع فرشان اندام های جنسیش ماده ترشتر می کنند. چردی که در اطراف پیده اصکار جنسی نمیشه. غردی خوش، خوبه غردی زیاده که حتی سرگی نیبون رو هم احکندش هم و این گروه رو عربانه کمتر معموله ولی به هر حال بوده و میگرفتن و استفاده میکردن نمیدونم خیمیگرش میدشتن اونم با هور قبط الهی میکشتن مثل می آقوی خورتن برای که بگیرن مادبه شد در هر صورت گروه زباط هم بسیار بسیار معروفه بچون اتریات حیبانیه بسیار معروف هست اینجا حکیم نگفته ولی ما چون بحث نسبتا مفصلی ترین در باقر این اتریات اینم بعد دیگه در ضمن این جزدجوهای اتکییات و سایر مسائل به به داروها و رسید دیگه همه داروها رو بشر شروع کرده و آزمایش بعد در نتیجه این کار پزشکی دیگه پزشکی و درمان هر درمان در تندرستی و راه گزن همین رازها کرد نیز آشکار جهان را نیامد کنه. که دنبال این رایو کارا بود گذار کند از آن پس به کشتی برای آقا ز به کشور تو آمد شدار. وقتی کتاب داشت از راه آقی رفت راحتتر به حالا نمیدونم یا مسئول شدیم که کانرکشی کرده بود به کشکی ها رو میروندن می دریا که بسیار مشکل بود کشکی در روتخونه ها پی خطره داره. در رایش و بشر استفاده می اون کندبان اینا ناره. ولی در دریا با اینکه یه این اون این یه پوتی گردوی بوده اون کشتیشون حتی ناچیز نهیشون بوده و معمولا با اینکه از کرانه خیلی دور رمی شدن ولی گاهی کشتیش از خوش توفانیشون می بردش رو بلاخرین ها می کرد این که خیلی چیز به اصطلاح مازرگان سود ده چهل می‌برد. از خطر خیزد خطر. از, از خطر خیزت خطر. خطر لبما معنی بزرگ و عظمم. کار خسیلی کار بزرگی. از خطر خیزت خطر. زیرا که سود ده چهل بعد نبنددگر به ترسد از خطر باز آسان. یا می‌رفت نفله می‌شد، یا سود ده چهل می‌برد. راجب این مدمر اگر افتلاعی که از داستان هنری گره یکی که نمیستوی داستان سندباد وحلیست در هزار چپ به چمت، در هست، هست و می توانید مطالبه پرمید با خطراتی که در اون دوزگاه سفر نریاد هر برداشته و گرفت که بوده به صورت خیلی خیلی دلپذیر و جالب پردشوی گذار کردن پس کشتی بر آب به به چونین سال پنجه برندی این چیز عرض کردن که رنج بردم ندید از هنر برخیرت بسته چیز هنر جز ادوبانش هم کلیویز نره نره رنید اونتها نرد و همچنین مرد، مرد برای انسان هم بکار میشه در هم زبنهای هندوورفایی کلمه مرد و کلمه, کلمه،, کلمه جنس مذکر و انسان یکی بعد مردی به معنی شجاعت و جمانمردی و دورابری و تلوچهرت و امثال اینا مردانگی بکار کرد نر هم به همین تردیب حتی الان هم میگن کلان کس مرد نریه مرد همه نره حالی اون که میگنی مردان این نر معنی مردانکیه و هو صورت دیگه شد کلمه خوب هو نره یعنی هیچ مردانکی مردانکی نیست ندید دست هنر چون اون جستجو و علاوه حلاش و تقلالی که هیچ چیزی رو راهش رو بر خیرت بسته ندید به دلیل هنری که داشت یعنی دنبال میکرد دارش کنید ندید دست هنر بر خیرت بسته یه شده نقل فرست داستان و پیش داستان هر حالا شروع می‌فهم نلگختن بعد میگن، مثلا یک ساعت نهو میگن، بعد دورون میزن، یک جای خیلی خیلی، بسطورا جالبی، این نگه میدارن و دورون میزن دور میزن ایمانو فوری جرم میتونن، دعا از می نزدین حرفا و چرا میگیرن می و بعد قسمت دیگری دارن که بهش میگن پسداستان استان و استان و بعد میره سر پست داستان پست داستان رو اون عبدالنبی فخر زمانی که کتابی در برای آیین قصه گفتن داره اونجا میگه که باید پست داستان رو در جالبترین جای ممکن قطع کنید به طوری که همه مشتاق خوشان داشت دیگر اینکه هیچ وقت بعد از این که داستان رو بود آجو دیگه باز هم بگو یا بگو آقا کار چی شد نباید بگی هیچ وقت من اگر عزیزی بود که تارهی جز شنیدن حرفش نبود به زبان و بی زبونی میگه شاهی بود امیری بود کسی بود که نمیشد میگه باز بعد معتاب رو جای برسونه که بسیار جالب بشه و همون ترتیب اگه ده بار ازش خواستن باز همین کارو بعد بکنه یعنی جای مطلب رو قاط کنه <تص> که دوستان مشتاقشن زمین دورش کنن در حال اون چیزا معلیس مقالی هم تقریبا های دو ساعتی چیزی میشه و یک ساعت نقل میزه مقال بعد دورو میزن اونا تا دورو میزن و فراشت همون تو چایی اگرم بخور و سیگاری بکیشه و اینه میاد بعد باقیش دیگه یه رو بده بیس دقیقه پس داستان رو میگه و خرکمون درست کار رو ما کنم که میگه همه کردنی ها چه آماد به جای جای مهی بر تر آقا نسخه معتورم هست چون این خیلی بیت است و قلاده و در حقیقت ابتدای سهوت جنسی این هست بر نسخه چیز جای مهی بعد میگوید که تنها یکی از نسخه های لندن در تخت مهی یک نسخه دیگر هم گویا مال پاریس جای مهین بعد می متن مطابق 9 دست نویس دیگر نه 9 دست نویس خودشان از جای مهی یعنی پاش رو از محل بزرگتری بالاتر بودند خدا جای بزرگتری اشراح که اگه خواب بالاتر بذاره دیگه بالاتر جایی نیست که گفتن که بابا گفتن شانه میشن برای این ترقی نداره نیچه این اینست که این مسئله از جایی مهی بر تراورتها یعنی باشا از بزرگتری بالاتر گذاشت حالا میگه بعد یه سری مسائلی میگه که اینا باز در حقیقت با اون موقع شناکسی فردوسی پیداست که مقدمه همین گرفتاری بعدی جمع میگه به فر کیانی یکی تحت ساخت چه مایه به دوگ در اندر نشاخت نشاختن و نشاختن هر دوش یعنی نشاندن و یک علفی داریم که اینو بهش بشه میگنن علف تعدیه علف تعدیه با این علف یعنی علف متعدی کردن مزیفهل ها رو ما میگیم نقایده مت... متعدی کردن فیال این است که آندن یا آنیدن آخر مستر در نیه متعدیه خندیدن خندانیدن, خندانیدن، خنداندن خوابیدن خیلی لازمه خواباندن و همسالی ولی بعضی فیل ها رو یه الف وسط وستر جاش سماییه یعنی ما نمیدونیم کجاش بشنمیم هر زبان کجا در میرن موردش هم سماییه یعنی در هر مستری نمیتونیم در بیرین ولی در میوردن قدیم بشنیم الف قدیه متعدیم شد. مثلا شکفتن یعنی باز شدن شب دام مرد سحر با گل نو خاسته ناز کم کن که بس بر این باغ بسیتون تو شکفت یعنی باز شکافتن یعنی باز کردن شکافتن این الف الف است متاع گاشتن و گاشتن گشتن یعنی دور زدن گاشتن یعنی برگردوندن باز اونجا نه توی فلان برگاش و این یه برگردن گشتن و گاشتن کفتن و کافتن که همون مثل شکفتن کفتن یعنی پاره شدن اناری که قاچ موتور سر درخت میگن نار کفته و کافتن به معنی شکاف دادن یا پاره کردن نه نه کفتن شاید شاید بعد دو صورت برامده دو معنی گرفته ولی به هر حال خواستند دیگر نشستن و نشاستن نشستن یعنی نشستن نشستن یعنی نشوندن با کلمه نشاست، نشاسته رو از همین داریم بناید که ساختانش این است که موادی که نشاسته داره تو اقیص می کنن. در حقیق می اون او رو می نسونن. نگه هم دارن. تا این نشاستهش جدامش باید بنید نشاسته یعنی نشونده نشاستن صورت دیگرش هم نشاختنه باز وعنی نشاندن به فرکیانی یکی ته ساخت چه مایه یعنی چه اندازه چه مایه به دو گوهر اندرد نشاخت یعنی اون ته ساخت رو گوهر نشان کرد این گوهر نشان کردن برای این ترسی پاسد و مرسع موزینه یعنی گوهر نشان البته این باید هم در اصطلاح عدب هست اصطلاح عدب وقتی که یه شعری علاقه بر اون وزن اصلیش اجزایش هم وزن داشته باشه یا لغات هم وزن گیره اینو بشه میگه هم ترسی که آمد برم به زلف بیارافت جبین روب حریش سیدنه و سر و در چین زلفکا مستی ست هزاو بند در بند زلفکا مستی ست هزاو چین بر کاشقر نبوده چنون ترچ محروض این نمونه ترس در کاشقر نبوده چونو ترک محروب در کاشمر نرسته چونو سر براستیم دونه دونه کاشقر و کاشمر سر برنم همه اینا مثل اینکه چکه های شعره ما هم هموزه می روشگن ترسی یعنی گوهنشان کردن <تصفيق> به دوزاکانی هم یه نوع ترسی بره یکی اینو هم مراثیشی شاه بعد بوخوری حشیشان دیگه چی نه کار مراثی و در اصطلاح در اصطلاح برای معداوی و روزونی نام میگن که کسی که شعر میخونه میشه معدا کسی که نثر میخونه میگن روزون و صبحان بر از جهنم با و مراثی خان کسی که شعر و نثر باهم توی خطوبتانه سلطنی مولاسه نباعث این هست مولاسه خانده از دولار که به فر کیانی تخت ساخت چه مایه دید گوهرم در نشاخت که چون خواستی گی برداشتی زهامون به گردون برخواست لزومی نداره بگم که از اناسر بسیار مهم مهمی که موجب جبت شده. سلیمان و جمسید به هم اشتباه بشن هنین پرست میگن سلیمانم به ساعتی داشت حالا میگن قالیچه قالیچه که تازه میگن به ساعتی داشت تور عرش تعیین کردن سرعت چند تعیین کردن. کردن میگه یک روزه از بابل میومد مثلا به خراسان و من حساب کردم سرعت قالیچه رو در این مقال نوشتم البته این مقاله رسیارون فخصالی بلکه یه رساله است به نام بویه پرداز در مجلده ایران نامه، سال ۲۲۰ موسیقی پاپ شده افثانه های سنی، اصلا فکر پرواز در ذهن بشر پیش از چیزی پیش از که به حقیقت به قیدان دید، صورت افسانه کن نهوه های مفالف و انباه و خلاف اینو خیدی کردن که اونو نوشتم اما از جمله سرعت قالچو سوریمون هم حساب کردم در حدود آسانه های دو موتوره ملخی قبلی رو اگر بساز. با تو چون برداشتی ز به گردون و چون خورشید تابان گنجیدند گفتم جم به معنی جم تابناک قبلا چون خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمانبাওয়া جهان انجمن شد بران تخت او شگفتی فرومند از تخت او به جمشید بر گوهر از شاندند مران روز را روز نو ما نو روز رو منصوب میکنند به جمشید اما این که مهرگان رو منصوب میکنند به فریدون و جمشید فریدون دو تا مهمترین فادشاه اساتیبی است. در ضمن من باید بگم که یهش نو رو در ادب سنتی فارسی هرگز اید نگفتند یا نوروز گفتن یا جشن خیدیم شایستگی جشنی با بایستگی روزی ملت را در جهان هر روز جشنی با نوروزی اید که می گفتن یا اید فطر بوده یا اید گرمان همین بیا که ترک فلک خان روزه قارب کرد حلاب اید به دمر قده بشارد مانمزم سعدی میگه که شکر به شکر نه هم در دهان مجد دهان اگر تو باز براقی حدیث من به ده دهان بعید نیست اگر تو به احبازاوی بعید نیست اگر تو به احبازاوی به اید وصل تو من خیشتن کنم قربان این اید قربان اید قدیر و نیمه شعبان از ایتهای مخصوص شیعه است در کشقرهای دیگه گرفته نمیشه مطلقا ایده اسلامی اون دوتاست اسمشن ایده حالا من نوروزه و اون یکم مهرگان است میشه علم دولت نوروز یکی دوتا هم نیست شاید مال سعدیست علم دولت نوروز به صحرا برخواه لشتر زحمت سرما به سر ما برخواه بر عروسان و چمن با تبا هر گوهری که به قباسی ابر از دل دریا است تا روایت کلاه قاقوم برفتر کون یزک تاپش خورشیزک انتلایه یزک تاپش خورشید به یک ماه سر به بالین ادم باز ای نرگس ما که سهران نرگس شهلا برها عاشق اون روز به شوق شاهد بنشه از که دل زاهد از اندیشه فردا بردن هر کنم که به جمشید برگو هر افشاندن افشاندن به معنی چیزی است که دارای اجزا باشید و وقتی که پرتاب میکنن پخش بشید. دامه افشانده گوه افشانده هم که ولی نصار کردن هست نصار هم نصر یعنی چیز پراکنده بید کنی یعنی کسی باز نداره نصار یعنی پراکنده کرده افشان البته دست افشانی و دامن افشانی هم هست ولی که چیزی توش نیست میکه دست افشان بر تو حالا یعنی باز مخصولش اون که چی میخواد کافت دستان من, من پتاک میکنم نیست نمیکنم ارز کنم که به جمشیدتر گو هفت شاندن بر روز را روز نو کردن سر سال نو پرمز فرپردین در نسخه خالقی است فرپردین خالقی خال نظرش این است که اگر در نسخه های ضبط مشکلی باشه که با در نسخه هایی ضبط آسان تر باشه حتما اون ضبط مشکل درسته آیندگان برای اینکه این به ذهنشون درست نمیشسته برداشتن تغییر و نمونه قلب برفروسی خیلی زیاده شاید 20 تا جای گفته کفت قلب پشنید ارز کنم که این شماره ده یکی هست هرموز و فرودین یه نسخه یه نسخه و یه هرموز مطابق نه دست نویس دیگر بابدین بنابراین نشون بده که باید به صورت بقاید قلب شده فرودین اما هورماز اسم روز اول از هر ماه هورمازد روزه تنابه گاه شماری ایران قدیم که دوازده ماه سی روزه بودن که دو روز برای هر روز هم یعنی اسم داشته و بعد پنج روز رو هم رها میکردن روز ششم رو نوروز میدوردن بعد از سپری شدن دوازن مثلا روز اول هر ماه فروردین روز بوده بنابراین فروردین روز از فروردین ببخشید بور مزروط آزم مخواهم که بسید آزم مخواهم بور از فروردین یعنی اول, اول فروردین مهروز روز روز شونزده هم به دلیل مهرگان، است. تیر روز، روز سیزده همه. جشن تیر روزان، هم همه به همین تحتیب چیز بوده. دوازده، تا از این اسما، بلکه سیزده، تا از این اسما، اسم همون دوازده سال. استاله. فنوردین اردی بشت تا و مثلا دی، رو دو تا یا ست روز دیبه که یکیش دیبه مهره یکی دیبه دینه و معنیشونه که این است که پشتش یا پیشوش کند روز نیمان کار نمی الان مهر روز میاد یا اون یکی دین روز میاد پشتش چهارده تا سیسی چهارده تا روزها اسمش همه روزها ماهر و هر ماه وقتی اسم روز و اسم با اسم ماه یکی میشده جهش میگرد تمام مهرگان یعنی مهروز از مهرماه بهمنگان به نظرم بهمندوی به نظرم 22 ماه خوشید درست نمیدونم ولی خیلی ساده است توی پهنگی مهمی میگاه کنید یا برهان قاطع میگاه اسم توی تمام روزهای ماه رو دادن این چیزه خیلی دریای علمی نیست که نتونیم پیدا کنید خیلی آسفون رو پید اصول و بغل عبور هم هستن قدیم هست تا بیاد جلو. عرض کنم که بهمن روزش میشه مثلا بهمنگان، معرب معراب شده بهمن من چهره اینجوری اصل بهمنگی رو پیش جدی که این با اون بهمن پادشاه نسبت نه با ماه بهمن. که بهمن روزو مهین فرشتگان رست بهمنگی رو از نور تاغذه کن بهمنجنه ای درخت مورد با از ازد و تنه قرمزد و بهمن و بهمنجنه فررخ بود فررخت و اردوز وزد و بهمن و بهمنجنه ارش کنم که سر سال نور هرموز فبردین براسودو از رنج تند گلزکین بزرگان به شهادی بیا راستن میو جام و رامشگران خواستن این نصرهای دوم شاید ده بار برام خیلی روی فردوسی تکرا شد به این مسلحت مجلس ها نخیل چطور این چون این گفته شد مجلس ها راستن میو روید و رامشگران خواست خیلی زیاد تکرا شد یک چنده با اخترافات خیلی جوزی مثل میو جام مثلا نرز کنم که اینجا آقای خالدی این جام در مات م. یک نسخه رو داره مرکبت فرشتا باقی نسخه هاش رود جام داشته یا جام یکی دیگه من آبون من به نظرم یکی یه نگیرم نو مسا ده نسخه نه رود رو یکی بزرگان و شادی بیاراستن می و جم و رامشگران خواستن چون جشن فررخ از آن روزگار به ما من بزن خست رو خب سهید نو با بیمه بخونه بیا. اون نه اونی اصطفی نه نه نه چون این جشن فرق از اون روزگار به ما مند از اون خسروان یادگار چون این سال سیصد همیرا کار ندیدند مرگم در روزگار زرنج و زبتشون نبود آگهی میان بسته دیوان به سان رهی به فرمان مردم نهاده دوگوش زرامش جهان ز آوای نوش چونین تا بر آمد برین سالیان همی تا ازفر شاه کیان جهان سر به سر گشته او را رهی نشسته جهاندار با فر رهی یکایت به تخت ملی بنگرید به گیتی جز از خیشتن را ندید زگیتی تر شاه یزدان شناس زه ازدان بپیچید و شد ناسفاز گران مایگون را زلشگر بخاند چه مای سخن پیش ایشان بران چنین گفت با سال خردم نهان که جز خیشتن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد فدید چون من نامبر تخت شاهی ندید جهان را به خوبی من آراستم چونان است گیتی کجا خواستم خور و خواب و آرام تان از من است همون پوشش و کامتان از من است بزرگی و دیلیم و شاهی من راست. که گوید که جز من کسی پادشاه همه موبادان سرپکنده نگون چرا کس نیارست گفتن نهچون چون این گفته شد پر یدان ازود بگشت و جهان شد پر از گفتگو هنر چون بپیبست با فردگار شکستم در و برگشت کار چه گفتن سخونگوی با فرسهوش که خطروشدی بندگی را بکون به یزدان هران کس که شد ناسفاس به دل شندر آید هر سو به جمشید برد تیرگون گشت روز همی کاس آن فره گیدی بروز بسیار اگر که ما همه این رژیم گذاشت رو دیدیم مخالف بودیم، موافق بودیم، نمیدونم هن با حسامت رو داشتیم روش های سیاسی رو داشتیم، به اصلا سیاسی نبودیم درست می‌بینید که سال‌های اخیر حکومت شاه دقیقا همینه دقیقا همینه که بابا یواش یواش به جای رسیده بود که میگفت این رجال بدگیخ که لگن مستوست میخونه کش گفته بود یه وقت سر همین گرفتار آ خووندا بود نه جماعتی حسین علاق و اصلان شریفامی و گلچیان و دوسه نفر دیگه قبل بدلا انتظام و اینا قرار میشن جلسه بکنن و بعد چریفی که میشنند که بیا اجازهشا بوده میره گلچیان نبوده با میشینن حرف میزنن که این نگری داره دارن اینا نرمک میکنندندارن چه از این حرفجاری که اوننا میدیدن اون امتونست ببینن بعد که خبر در دو نورش رجال و بعد ریختون تو کنید کشید. به وقت تحمل آدمی، یعنی تحمل ی آدمی حتی در عد دوتر امیر نداشت. حالا قوام سرطنه و موساده و رمام حکیم آدمه او سخوندار که بمیند. هی یا پایین پایین پایین تا رسید به هوویده ها. ها شخص مورد نظرش بود. که هیچ نباشه کلمه یتباینه یه درقصال گفته که نخوص وزیر واقعی کشور علازرات هم در نخوصش جایی که ترعظر که نداره گفتن ترعبی نداره ترعظر که نمیشه داشته باشه دیگه این است که باید آدم که یادد داشته الان می خونم به چشم گرران رو می بینه داغون همکت همه رو میذان گردن این زوا و این هم هر روزی یکی میاد خودش تنهایی از اون میگیر میره بابام که کامپیوتر نیست من پ گفتم آقا کدام رئیس ناندیکت که هات مشاوران ندشتهشه به شماور امریکا با اون مشکل این شکر دنیا رو که داره یه ات مشاهدی زیادی م 9 دولت در دولت بعد کله که ضبط نمی کنم. یه مقداری می که گنجایش نداره وقتی از حدش گذشت از اومد پس می زن به دیالش می رفتند از معارض می دهده با هم بعد هم می زنیم هم چه میدونم چه می زنیم برحال درست این داریم می دینیم به چهش بنابراین این که اساتیر این صحبت جمشید کنیم چند سال زنده اینکار یک سیور و یک سیور مسئله این هست که این دائم تک کار شد به محض اینکه یکی سویمانکت خودبینی پوشی کرده بلا فاصله وسایل سقوط شد گفت چو شود مرد و روزگار همه آن کند کشم ناید بکار جمشیده میگه این همیشه اول که گفتی برش دید آسمون بعد هم همه وقتی که ما تو معقود موندن و گوهر پشندن و چکردن و چکردن و چکردن و این جشم بود بعد این مقداری میگیه سی سالی به این فرکیب گفتم قبلا در داستان جمچیب که در عوستا اصلا 900 ساله و این نه سال دو بار جمچیب میشه اولومدگاه و منازات میکنه و زمین معادلی یک سمون خودش کش میاد سراب و میشه دو در حیران و در این روزگار پیری و بیماری و مرگ نبود و احریمن هنوز حمله نکرده بود پیوان به صورت فرمان بردار بودن مردم، مردها به صورت جوانهای تازه سال اینکه دو دویه ساله رن درسته نمیشت به هر حال مرد و جوان، زن جوان، پیری ویسی نداشت و هنجور دنیا پلم شد، بیماری اصلا نبود، چیزی نبود و مردم آسایش و آرامش کشتن و به این ترتیب سالها بود، بافرهی و بعد کم کم وقتی که نگاه کرد یک آویت به تخت مهی بندگرید بگیتید جز از خویشتن را مدید اینکه نمیشه آقا یه محله و دستور میگیسم میخواهد یه آدم متفکر که فلسطه همه رو که نمیشه که باره دار که کار دنیا کاری یه نفر می وقتی کسی فکر که موهند نباشم هیچی نیست خب همین میشه دید به جز از خویشتن را ندید گیتی سر شاه یزدام شناست و یزدام به پیچید و شد ناسفاس در عوستا رویا گفتن که دروغ بخ کمچید اینجا به پردوکی که ناسفاسی بشید تا ما به هر حال هر شدوم از این دوتا به حد کفایت اصطلاح میتونه اصلاب سبوتی در ارز که در عوستا گفته شده است، که فر ایزدی ست بار به صورت مرگی از جمشید جدا شد یک بار ایزد مهر او رو گرفت یک بار گرشاست به سیوست گرشاست و یک بار گیر فریدون که توانست حال رو بعد از این دیگه در سه نوبت همه کورای جمشید سه نوبتی است سه بار مناجات کرده چه و چه این بعد این که فره از یادی گدا شد دیگه مورد تحیید الهی نبود ویازگان بپیشیده شد ناسه پاس گران ماهیگان کرد بخوان چه ماهی سخن تیشیدشن چه روچه به همه حرف ها باید کشیده <تصفح> چون این گفت با سال جز خویشتن را ندانم چون را به برای است یعنی این دنیا رو جز برای خودم نبینه هیش کس اینجا نیست همیشه میگفت بیچار شاهن کار میشه زیاد بعد فکر کسته میگفتش خب چه بکنم نمی کنم. بعد هم همچینم همچونم برا که جز خیشن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد پدید چون من نام بر تخت شاهی ندید جهان را به خوبی من آراز تنان از گیتی تجا خواست می‌کفت بروازه‌های کمتون روزوی بزره بزرگمان می‌دارم نیدونه خورخواب و آرام‌تان از من هم. همان پوشش و کام‌تان از من هست گفته که سال‌ها چیز کرده من. بزرگی و دیهیم و شاقی نرست که گروید جز من کسی پاک چند همه مووده هم سر فکنده نبون مثل همیشه که درعت این حرف رو نداشتن، باید از خونش بگذاره کسی اصلا وقتی به این مراحل بیرسه دکتاتور، یکه بیر حرف که باش نمیشه زد خریدش کنش. رفت که چنگیز ثابت طبقات ناصری مناج سراج جوزجانی می نمیسه، می نمیسه که من در یه ای بودم که لشکر در چنگیز چندگیز مقامت کرده بودن و بعد اینا قلعه رو گوشادن و فلان اینا منم به اصرا گرفتن من حیات علمه رو داشتم اینا این با آقایی نفشید من رو نکشت پلاصه. و بعد پرسید تو کی هستی و چجوری رو گفتم آره من عالم همون این چه هستم خیلی کرد که مثال آره محترمی اینا بعد هم یه مدهسی صحبت میکردیم و چیز میکردیم و حرف میکردیم. بعد که یه روزی ببینه صبح طرف مشورت بودم طرف ندیمی چنگیز بودم یه روزی گفتش که حتماً با این کارهای عظیبی که از بست من بر آمده قسم من در شد و حتماً آیندگان نام من رو خواهند نظر تو چی؟ نجو گفتم که بروان من امان دارم یه عرضی رو اصلا فکر نمی که عرضی باشی که نمان خواهد نمی شیم بوده بله خلاصا محکم میکنه عط و فیمانو که یه وقت شبه چیزن میگه که بله قربان البته اسم شما که خواهد مندنی به شرط کسی رو که برکنه از کسی رو دینده بره یه آیه هم دیگه اوقاتش از این هفت شد. و خب من امانو ددم که باید ندارم اما من فکر می کنم تو آدم دانشمند یا بسیار آدم نادان ابله یادی اون گفت من دارم دشمنای خودمو و کسانی که در رقاب اغری محمد اغری به مغالی یعنی دوز. از سلطان محمد خوار از شاه رو بشین که همیشون میگفته اغری محمد گفته من اعوان انصار اغری محمد دارم داغوم نزنم من با جاهایی دیگه او کسایی دکار نبرن و اونا میگن و تو نیشه که نفهمیدی میگه و برو باهم شد میگه نبینه میگه باید خدا خواهد نمیشه بهشون گفت باید کسی بخواد بگه باید سر جونش بگذاره تازه تاثیر تازه نده بلکه او چنان در که هر چه ادنه رو بگنم که تیرون مگن؟ در آن سرسده برنده که نه ها این توده یا پول چون این گفته شد همه موقع دان سرف نگون چرا کس نه یارست این نه رو به نظر من باید این نه رو توده بینیست یعنی نه یارست چرا بگه نه چون بگه یار استم و نیچور یعنی ات کردنه. مازیش میشه یار استم یارسی یارست توشان. مزارش میشه یارم یاری یارت. درست نیست؟ وقتی به مزاره ات زدم میشه بیارم یعنی چور ات مان فهم می‌کنیم نیاورن، نیاوری، نیاورن، نیاوری، نیاورن. یا بیاورن، بیاری، بیارن. توست تا می‌بینیم آوردن. اون آوردنه. موزریش از آرام، آری، آردی ندی. حالی به یه تأکیدیانون نرفیم، فهم این یه میاد این وسعت فاصله میشه به که نمی‌کنیم، بیارم یا نیاورم که نمی‌کنیم، این عینان می‌شود. و باستی که شخص بدون اینا کدومه سخن خیش به دیوانه نمی یارم گفت شکره از دوست به دشمن نه طریق عباب است. لیکن این حال محال است که پنهان ماند تو ذره میداری و پرده سعدی غصب هست نه ایش رسید جوعتش بوده چرا؟ نه جوعتش بگه چون چون این گفتی شد پر ریزدان از, از او بگشت و جهان شد که آز بفتگی هنر چون بفیوست با فکردگار مسود فرست شکستند آورد و برگرد کار چه گفتم سخونگوی با ترس و با ترس ترس از خداست برام با ترس و حوش که خسروع شدی بندگی را بکن خفچه اوجد که نه کرسی آسمان مهی زیر خواهی خزل ارسلام مگو پای ازدت و افلاک نه به دیرونی اخلاص بر خواهی به از من همون کس که شد ناسه پاس به دل شندار یکی هر سو به جمشید بر تیر بون گشت روز همین پاس هم برد روی باقی ویستن باید که سر چشم باقی با اینکه سرگداشت در حقیقت سرگداشت زهایی که ار داستان جمعشید آمده با قصه شکست و از این رفتش پسند سامون یعنی مسطح گردان که آسمان چون هوا هوا مشسته بروش ما متاسفم که داستان جای خیلی جالب هستن چه یعنی در سن ما کلی انسا الان شو درست شد بلاخره بشر قابل تربیه حلوله نمی‌خوام چیزی هست اینطوریه که جاهایی دیگه نه ولی یه جور فیسبوک کردن میشه بله تاچ افسانه‌ای une